داستان ششم کسی معمر کلکدو رو میشناسه یکی پشت تلفن داشت میگفت یه هفته از دنبالت میگردم اسمش را قبلا گفته بود معمر پشت تلفن طوری حرف میزد که انگار میشناسمش پرسیدم ببخشید شما کی هستین؟ یه بار دیگه گفت معمر با خودم گفتم زشت است بپرسم کدوم مهمر؟ اگر واقعا کسی بود که بایست میشناختمش یعنی اگر او اینطوری فکر میکرد آن وقت چه جایی نمونده که سراغتو نگرفته باشم آخر سر یکی شماره تو داد با اکراه گفتم بفرمایید آقا باید باید حرف بزنم حرفتونو بزنین آقا پشت تلفن نمیشه خونت کجاست؟ سرانجام گفتم ببخشید اما شما رو به جا ای منو نمیشناسی. ای عی به خدا از صدام به جا وردی؟ نه خیر به جا ای منم دیگه معمر کدوم معمر آقا معمر شماری صد و دیگه مگه توی یه راست نبودی معمر کل کدو دیگه گفتم آه، توی معمر؟ اما نشناخته بودمش. با خودم گفتم، خوب نیست نشان بدهم که نمی شناسمش. به هر حال از دوستان دوران دبیرستان است. گفت، منم دیگه. بیست و شش سال بود دبیرستان را تمام کرده بودم. مهمر کل کدور از کجا بایست میشناختم؟ کار خیلی واجبی دارم، باید ببینمت، آدرس تو بده. نشانی خانم را دادم. بعد از ظهر سر و کرلش پیدا شد. همین که آمد توی خانه دست انداخت دور گردنم. خب، دوست دوران دبیرستان بودیم دیگر. من هم خواستم دست بیاندازم دوره دور گردنش اما نتوانستم. قدش از دو متر هم بیشتر بود. ناچار دست انداختم دور کمرش. هایم را شلاپ و شلوپ ماچ کرد. من هم یکی دو بار پریدم اما چون نتوانستم به لبهایش برسم، لبهایم را جمع کردم و دو بار توی هوا صدای ماچ ماچ درآوردم. یعنی اینکه من هم ماچت کردم. فوری پشتم را به او کردم و لب‌هایم را پاک کردم. تا آن موقع همچون روبوسی ندیده بودم. لب‌هایم طوری نوچ شده بود انگار گاو میش لیسیده. رفت روی مبل نشست. هم دیگر را زیر نظر گرفته بودیم. توی ذهنم همچون دوستی نبود. هر چه فکر کردم یادم نمی‌آمد. اصلا توی مدرسه ما کسی به این درازی نبود. همینطور به همدیگر زل زده بودیم که یک دفعه گفت فکر کنم منو رو با خودم گفتم زشت است اگر بگویم نمیشنسم. آدم مگر دوست دوران دبیرستانش را فراموش میکند. میشناسم بابا مگه میشه نشنسمت؟ خب من کیم؟ محمد. کدوم معمر؟ مهمر کرده کدو آه الان باور کردم اگه میگفتی نمیشناسمت توی صورتو تف مینداختم و میرفتم میشناسمت میشناسمت معمر کرده کدو خب دوست من الان به من گوش کن مشکلی واسم پیش اومده تنها کسی که میتونه نجاتم بده توی میگن دوست آشنا زیاد داری نمیدونی چی میکشم برادر نمیدونی چی شده مامر؟ اسمش را هم مدام تکرار میکنم تا نفهمد بهجا جا نیاورده همش. بدبخ شدم. میگن دوسته آشنا زیاد داری فقط تو میتونی نجاتم بدی. من که بیچاره شدم. تعریف کن مامر. تعریف کن ببینم چی شده. خبر داری که واسه درس خوندن توی رشته مهندسی شیمی رفته بودم آمریکا. خبر نداشتم اما گفتم. خبرشو دارم جان. خبر دارم. نمیدونم شنیدی یا نه، اما حتما شنیده ای که توی امریکا خاطر خواهی دختره شدم. شنیدم ما جان، شنیدم. بابای دختر مدیر هتل بود. من و دختر عروسی کردیم. خودت که میدونی؟ میدونم مامر جان. بعدش دوست من. او همینجور تعریف میکرد من هم برای اینکه که بشناسمش با دقت به صورتش نگاه میکردم. هر از گاهی حرفش را میبورید و میگفت پسر تو منو نمیشناسی میشناسمت به خدا میشناسمت خب اگه میشناسی پس چرا مثل شطوری که به نعلبندش نگاه کنه بهم نگاه میکنی؟ ببین آخه یعنی دارم گوش میدم نکنه خودتو گرفتی ای بابا واسه چی خودمو بگیرم تعریف کن دیگه گوشم با توه بعدش رفیق من با این دختره ازدواج کردم و دو ما بعد از ازدواج مریض شدم خودت که شنیدی؟ شنیدم موامر جان دروغ میگی؟ آخه چرا دروغ بگم؟ به جون خودم شنیدم خب اگه شنیدی بگو ببینم مریضیم چی بود؟ فالا گفتن آپاندیس بود، نمیدونم برانشیت بود یه همچین چیزی گفتن نوچ درست یادم نمونده مریضی چی بود موامر؟ من چه میدونم؟ هیشکی نفهمید که هیچ دکتری نتونست تشخیص بده بعدش گفتم باید جراحی بکنن. من بردن اتاق عملو جراییم کردن. خودت که شنیدی؟ نه، اینو نشنیده بودم. به شما میگن دوست، اگه تو دیار قربت بمیریم یکی تو خبردار نمیشه. خب باید راستشو گفت. اونی که شنیدم میگم شنیدم، اونی که نشنیدم میگم نشنیدم. پس نشنیده بودی. به هر حال عمل کردن. ایشالله که خوب شدی. خلاصه بعد از عمل نتونستم برم دانشگاه اون موقع پدرزنم گفت که تو بهتره بری مدرسه عالی هتلداری درس بخونی گفت بعدا خودم بهتون پول میدم زن تو ورمیداری و بر ترکیه اونجا یه هتل باز میکنی ما هم گفتیم باشه بعد شروع کردم به تحصیل مکاتبه هتل داری دو سال توی مدرسه عالی هتلداری دانشجوی مکاتبه بودم بعد از دو سال مدرک هتلداری ما با پست فرستادن توی دوره هتلداری شاگرد اول شده بودم خلاصه بعد اینکه که مدرکم و گرفتم، پدر زنم گفت و یک کم کار آموزی بکن تا توی هتلداری پخته بشی. گفتم چجوری؟ قرار شد توی هتلی که پدرزنم مدیرش بود، کار با دربونی شروع کنم و بعدش گارسون بشم. گفتم گارسون رو بشم؟ گفت مکاتبهی نمیشه. همونطور که داشت تعریف میکرد و دقت به صورتش نگاه میکردم شاید بفهمم چه کسی است. یک دفعه حرفش رو بارید و داد زد: بسر! تو هنوز منو به جا نیاوردی." "والا به خدا میشناسمت، ما جان." <تصفح> "پس چرا مثل زر زدی تو صورتم؟ چون دارم با دقت گوش میکنم واسه همین." "منو نمیشناسی، اما به هر حال." بعدش بگم واسه آقای خودم شدم دربون هتل. هتل 20 تا دربون داشت. قرار بود 4 ما دربونی بکنم. هنوز یه هفته نشده دربونه گفتن اینو از اینجا ورش دارین فهمیدم چشم دیدن منو ندارن اما چون داماد مدیر بودم چیزی نمیتونستم بگن گفتن و از ما بهتر بلده چیزی نیست که ما بخوایم یادش بدیم اینو از اینجا ورش داریم. یه درجه ترفی گرفتم فرستادنم به تلفن خونه‌ی هتل توی تلفن خونه 14 نفر کار می‌کردن قرار شده بود سه مونجا کار کنم. هنوز سه روز نشده بنای و گذاشتن گفتن اینو از اینجا ورش دارین وگرنه هممون کارو ول میکنیم و میریم. فرقی نمیکنه. هر جا که باشه به آدم با ارزه حسودی میکنن. رفته بودن به پدر زنم گفته بودن ماشاءالله همه چی و بلده. ما چیزی نداری یادش بدیم. بیخودی وقتش طرف نشه. منو از اونجا ورداشتن و بردنم رستوران. شدم گارسن. قرار بود شیش ما گارسونی بکنم. هنوز شیش روز نشده گارسون های هوتر قیام کردن. یا اینو از اینجا میبرین یا این که ما میذاری میریم. چرا؟ گناه داره. بیخودی وقتش طرف میشه. ما همه چی و بلده منو کردن سرگارسون. توی هتل سی تو سرگارسون بود. هنوز دو روز نشده سرگارسون ها گفتن یا اینو از اینجا میبرین یا ما اعتصاب میکنیم. حسادت همه جا هست. منو نگاه کن. بله تو منو نمیشناسی میشناسم این محمد اگه میگفتی نمیشناسم اون وقت می‌گذری بعدش منو کردن معاون مدیر هتل حتی پلرزرم هم فقط یه هفته طاقت آورد رفته بود پیش هیئت مدیره شرکتی که مالک هتل بود و گفته بود یا این یا من منو به هیئت مدیره احضار کردن گفتن شما همه چیو بلدین دوره کارآموزیتون تموم شد گفتم من که احمق نیستم دوره کاراموزی پونزه روزه که تموم نمیشه من از اینجا هیچ جا نمیرم اون وقت رئیس حیط مدیره گفت آقا لطفاً از اینجا برید وگرنه به خاطر شما ما هتل که هیچ مملکت رو ول میکنیم میریم من اون موقع یه حماقت کردم اگه میگفتم هیچ جا نمیرم اونا هتل رو واسه من میذاشتن و از مملکت فرار میکردن گفتم میرم اما به این شرط که به هم بدین. گفتن به ات گواینامه بدین. گفتم بهت گواینامه ستاره دار میدیم. فقط تو برو. گفتم رزردنامه شغلی هم میخوام. گفتن هر چند تا میخوای بهت میدیم. یکی از اعضای مدیر گفت هر چقدرم پول بخوای بهت میدیم. گفتم پول نمیخوام. گفتن به ما خیلی خدمت کردی. ارزش کارمنده اینجا رو پس از اومدن تو به اینجا فهمیدیم. خیلی به ات مدیونی. هر چی بخوای بهتمیدیم؟ پدر زنم گفت تو حالا برو به مملکتت واسه ساختن هتل جا پیدا کن من زنت و هر چقدر که پول لازم داشته باشی بعدا میفرستم پیشت من پا و اومدم مملکت خودمون چهار سال گذشته نامه می نویسم پدر زنم جواب نمیده نه زنم میفرسته نه پولو؟ بیا اینم مدرک هتل داریم اینم گواهی نامه تخصصی درجه یک هتل داری که بهم دادن اینام رزدنامه ها امروز توی مملکت خیلی به هتل احتیاج هست همه خودشون رو این کار میکنن اما آدم متخصص توشون نیست حیف من به هر مقامی که مراجعه کردم از سر وازم کرد بعدش رفعت خودمونو دیدم رفعت گفت بیام پیش تو میگفت دوست آشنا زیاد داری کدوم رفعت؟ رفعت شطور نمیشناسمش. بابا مگه تو دبیرستان گالاتاسرای سرای توی یه کلاس نبودیم؟ چی؟ گالاتاسرای من تو گالاتاسرای درس نخوندم بقیه را رو نمیتوانم تعریف کنم در و همسایه رسیدند و من را از دست اون نجات دادند موقعی که داشت میرفت گفت فکر نکن گل فهمیده بودم انها نمیشنستی پسر تو که منو نمیشناختی واسه چی سعی میکردی از اسرار آدمی که نمیشناسی سردر بیاری؟